و آله طیبین و طاهرین و معصومین و لاتدار مسعال عدادهم اللهم افرانا جمیعا مشاربین حمد در احسام سهر و این که در خود تاریخ معارف دینی کلا از همون اوائه بحث احسام سهر مفرحی درستش هم همینه چون واقعا هم ابحام داره که دقیقا حتی موالی گرباران استعمال شده اینها مورد استعمال جهانی یکی باشه یا متعدده بحث دوم با دیدوست خوندیم که تأثیر نفوس باشه البته من در خیلال بحث ها مثلا صحبت این که شعار ایلیتریکی در محافظات آقاده هست اون که شعاری دیدی که ماید تحصیل نفوز نشه اون نظمه در اصطلاقه قدره این نظمه خاصییته شناعت کردن یکی در خاصیت خاصییت یکی در طبیعت یا طب بذارن این توضیحاتش گذرد پس این که میکنه این پر نظمه خاصییت میدونن و این یک توضیح ای از بحث نفوز غیر از خاصیته. مثلا ما یا در یه خصوصیت که طرف رو نسان نگه میداره. این رو اصطلاحا جزه تبایه نمی این روز هم نمی کنن این روز هم خواس می دونن خاصیت. اصلا از که این عبارت ما خوندیم حضرت ابن غیم بگیریشو من ابن غیم چیزی که تأثیر اون مبهم باشه اصطلاحا رو این رو می و چون این بحثی حقیقت خاصی وضع خاصی چیست در کلمات متخصصین نفنده تب قدید این توی میشه رفتن به ما همون فیلن هر حال مرادشون از نفس از خاصیت یعنی خسرتی در نفس که کمال اوله و اون در اثر ازدادی که پیدا میشه کارهایی رو میکنه در اثر اون مقابلی اخری جهاز پیدا می کنه. مثلا اگر ما نموان مثال پرگمه اینه این که نفوس تلکی هم بودن مثلا ما میسیم بانونجازویت یک نفس رو دونیم که خود بانونجازویت جرس موسیم پس جذب به یک به آهن رو بایی معنی داره به بانونجازویت معنی دیگری داره این که این من که از تردر مسئله اون جز خاصیت مصره. شعاری فریکی در بدن باشه قید از تأثیر رفت مثل ثبوت که در کتاب فخر راضی و نیشابوری آمده منصر به ارواح لحرزیه هست کرد این ارواح لحرزیه به تبدیلیشون گاهی همشه قیب طبیعی یا اولی مرتبه یا قیب خوبا هم گفته میشه که مراد اجنده باشه بعد مرحوم به مجلسی از اونجا میکنه و علم هم نرقول از فردین تخاصیبش در کتاب به مرحوم آمده اگر مانیدن اونجا برگردن، استاد تصور کنه حرفه مرحوم مجلسی همین حرفه ماله فرد راضی ما به هزه المتاخلی مثل فلاصفه و که جه وجود نداره و اما حکاب رو فلاصفه ف لمیون که رو قول وجود جن حالان خود من حضور ده ندارم از خلاسفه این به نبل فخرازیه اتفانو کن ولیکن هم سماه رو و به لعباب عرضیه گاییم به غیب طبیعی گاییم به غیب غواست و وحیه به انفاسها مختلفه مختلفه کل اصنافان نازتیم تبدیل شاید روز نموشه علایانه از مجموعه شواهد کتاب در میاد که حتی جن مشلمه مثل انسان و پرداره و جن هم در جاه داره زنهای خوب داریم بد داریم شروع داریم صالح داریم طالح داریم خود سوره جن یه مقداری زیادی از آیات معبوطه به جن رو داره هست کردن اگر شون وقت واقعا مساعد نیست و تصلاحشون نداریم بحث رو ما مجموعه یا آیاتی که در بابی جن اگر یک جا جمع بکنیم از اون مجموعه این مطلب در میاد یک وجود حقیقی است و ظاهرا از انسان هم ضعیفتره من حیث المجموع فقط نقطه مثبتی که او رو بر انسان مهیت کرده طی مکان داره طی زمانشهم روشن نیست الا رو م ب م انسان تیه مکان داره مراد از تیه مکان بکن میشه در این ناحیه اینجا باشه اینجا جورام از دیوار ده تا دیوار صد تا دیوار اون طرفتر رو بگیره این تیه مکان در اصل به لحاظ این مکان که ما در اصطلاحاً در جنب می‌گیم خیال ارض این خیال ارض در اصل همین مکان مساحت رو داره اما خیال زمان شوشن نیست چون خبرو در دو ساعت در 5 ساعت در ده ساعت در یک ماه بعد این چیزی که برای جنگل‌ها می‌گن این روشن نیست بسیار این هست دیگه این علوم این توری یک بدیش اینه که یک یعنی مقدار اوهام و خرافات در همه مجالاتش هست نه در یک مجال هم در اینکه که کهی پیار تسخیلی هم در این که چه کار میکنه شبابیت هایی داره خیلی اوهام هست از کلم کار شده هم خیلی طولانیه. یکی از مزرگانی که ازدامی کار خالباً اسمش میشین اینشاز رازی نباشتش بر انا در یک مجنه هایی هایی نه کنم خصوشانی ما از عرضو کنم جنی رو اقضا کرده بودن و اینجور از عمرشون پرسیده بود گفتوید بین 1400 تا 1800 سال ما جنه عمر طبیعی اون ما بین 1400 تا 1800 حالا تصادفان ازش پرسیده بود که تو چند سال تو 2600 بسته رو شاید بود که صغر دارم پنجه صغر دارم رسول رسول الله در کردی رسول, بله. رسول الله بله اون حدیثی برمو خیلی عجیب کنیم حدیثون چیم نمی کشیم که ما حضین آقا هم رسول الله خیلی علوه و داره از این آقا اسمش نیم برمیزاره حالانی که اقماقه هم اینه که اشون رو شرف خیره و منها شغیره درسته مطلب مطلب, مطلب درست آیات و روایات در این جهت زیاده یعنی اصلا یک بابی اصلا ولی آدمش کافی راجع به جند بحار در سماو ولی آدم یک بابش راجع به جند نهار کردن مجموعه ی آیات را که جمع بکنیم خیلی زیاده و شباهی این عین انسان اینسن فقط همین به اصطلاح با, با چشم ریان رو پس با خود و جسم افیری هستند اطلاق و در مثلا این نوع هم مثلا هست مثلا یک گاز دیگری هستن و تحقاب به اصطلاف داره ما دیگه ما نیستن که تو به عرض و رو روشه میتونن به اشکال مختلف گاره بیدیم دودی آتش. این دود میاد بالا این دود تمام میاد به شکلش عوض میشه هوابشی می به خدای عوض میشه زندن یه چیدی شبیه اینه یه ای حالت شبیه این طوری داره که شکلهایی متعدل و متنبلی و اون طول از و نداره ماده اصلیشون. شد حدایه حاله و قدشه هده اهل سنعه و تجربه امنه اتصال به ها البته استلاح اهل سنعه رو من شون نشون نگاه بکنم شاید حالایه کتاب اصلاحش باز اخرازی رو باشه تجربه اشکال نداره کلمه تجربه اون نیست در اصطلاح که تب قدیم وقتی این سنعه این استفاده که مهمیم چیمی آگهی کارهای عجیبه‌ای که انجام می‌ده مثلا فلس طلاق مثلا نس و طلاق اینا رو اصطلاح صنعتش میگن که در هر باب این اینجور گفتن مرادش از در باب صنعت اصطلاحونه اما این رفتی به تسخیر جن نداره این اهل صنعه‌ای که ایشونجا گفته اهل تجربه احوال نداره اما اهل صنعه خیلی عجیبه چون اهل صنعت به تسخیر جن نیست تمسک برواحه ارزیه به این معنا نیست اولای من نمیدونه اگه این عبارت در دو جلد به ها آمده یک جلد پنجانو به نقل از سخت رازی جلد 63 به نقل از تحصیل این چی که بر اون شیخ هرنس نارده جلد سه از جلد 63. نشد مقارنه بکنم این شاهد اهل سرعت کلمه سرعت اینجای کمی به نظرم همچین اصطلاقی نیست اصطلاح خارجه اگر گفته مرادش مثلا کسایی که تسخیر جاند دارن ل اتصال بها به بها به هر واح هر زیه برمی گرده به امور خفیفه و افعال سهله این نیست نیم بردش سخته بردش سهله حتی بعضی ها دعاها رو بکنی تصوری زیر میشه از خرافا دعوه هم باشه گیریم لا لامشقت بی ایجادها اینجا کررق کررق نوشته خب روی باید باشه کررق و روها مثل رویه که اسمش و دو دو از کردن به معنای به اصطلاح چیز کردن دو کردن آسی کردن اصطلاح هست که وقتی میخواد اصطلاحشون این طولیه. کار رو انجام بودن با همین حالاتی که اصاله یا جن یا غیر جن یا احرواه یا ملاعکه هستا در ارتباط این که من خواهر از کجاز پیشن در نام دو ادام این ملک فرقی داره خیلی توسطلات بگیم بگیم اگر آوانی نازشون باشه بعد این ناموهای خدین دیده باشه فاکت های خدین دو چار شی <تص> <تص> <تص> <تص> دو به دارن که شایع واقع شیشه هی هم هشه. این با این گای کلمه بودو می نیستن گایی این راه گایم 20 می نیستن چون بودو دو شایش هست وانگی جام بوده می‌بیسمیه. خیلی آسرا برش واین در همین بقول این سنت را هم سنت همیشه در این فنی که دارن خیلی برش آسرا و گاهی برای ارواح شایع، نگاهی برای عروض ملایش است؟ اول آخره هفته دلی. و با عنوان غالبا حالا میام غالبا شون یک شروع داره به عنوان فعل محین توش دودم میکنن به عنوان فعل محین ها دایی هم ممکنه به هم اثر به با اون بار بشه ولی غالبا به عنوان فعل محینه مثلا که اگر بناس ملاکر احضار کن بود رو نشبه همبر و بوهای خود اگر چیزی که باز اون طرف رو بستن مثلا تشویق تشکل و مشکل و چیزی که بوهای بد ایجاد میکنه این استعانه به این دو تا هست هم به چون نمیتون توضیح بدم اینجا شینجا نیست استعانه به هست یک کلمه تجرید در تجرید نگاه بکنی تجرید همی برهنه کردن رو دیگه میتونم موردشون هست تجرید هست تجرید هست چیه نیمیفهمن وقت سم روهاد نوع بالعضائم اون روها و اون روها رو میشه عضائم میگن تا عضائم در اصطلاحشون شامل عر مثلا ملک محکل به جمع شمس و قمر رو رو معتقل انکه اینا که اون ملک موقت بذارن انواع از که به اونها میدن ای برای مثلا ای برای ای ملک محکل به شمس رو قسم میدم حالا حالا چیزایی که نوشته شدید یا از عمل تسخیر جمعه عمل تسخیر جمعه از از حالا یا اون که که این کرام رو وزده بوهن به از یا بازمونم مثلا خیال میکرده هم یه اصطلاحی اینا به اصطلاح به هم نمیخورن یکی نیست بعضیشون ایشون مرحوم های اینجا کلام محل حاصل کلام مجلسی در مورد ثبوت اصلا کلام مورد مجلسی نیست خود مجلسی اسم داره که ایمان فسارتون رو مورد نشابونیم و ایشون نیست افور اما مرحوم های اصطاقی فلا راید که خروج هازن نور و حکمت از کردم من رو یک معنی واضحی رو برای سهر گردم چی غیر از اون باشه اما میان خارجه نیز این ببینید دقیق بکنیم ممکنه ما هم بگیم سهر نیست، اما گاهی در اصطلاح ها حرفیبش میشه مثلا چطور اصطلاح ها که برای سهر و حضر سلیمان نسبت دادن خب یکی از ها حضر سلیمان تصفیل جن بود یکی اصطلاح ها حضر سلیمان تصفیل جن بود. الان. و آه آه آه چی ملک, سلیمان؟ ملک سلیمان رو یک مقدار ملک سلیمان تسخیر جن بود این اشتیار کن سهر اصلا داره و ما کفر سلیمان ولکه نشادین کفر و علمون نازه سهر این استاد اشترال یعنی که اصلا سهر نیست قبوله ما هم نیدونیم حقیقتا تسخیر جن یک محبون دیگه یه بلادشوار حتی ان تصویر چه این اصطلاحی که مثلا جنسه نیست ای این اصطلاحی که مثلا حالا شهرت جری می‌گیم این یه واقعیتی یکی داره یه از جنرال assumption تاخی بکنه کاری نیست تصویر اینو چی فهم میکنه. نه الان در زمانه ما خیلی متداول در زبان فارسی نام حیوان حیوانات چیزی که شیر رو نام میاره تصویرش میگم بازی‌های موهی نه ها, ها با جن مثلا مشکلی نداره هیچ شبه دیده نشون نمیشین تعلیمن و تعلمن بلا دلیل علا حرمتی فی نفسه اینشون معتلا که حرمت نداره لادن میترد الا لادن فرسته علی عنوان محرم من ایزار انسان و اضرار چون دهزی ها با تصویر جن واقعا ایزار میکنن افراد رو راسته میخوستن اونجا مثلا شخص رایی یا اضرار هستن دهزی ها راسته جن مثلا اینا پویه که دروی روزن هموالی کسی رو بگیرم بوده چرا رو نه رو حالا میگم برمه او اوکان از مقدمات محرمه <تصفح> یا مثلا گفته شده برزی رو در کارهای انجام میرن مرمو کنم کارهای زشتی زشتی و کارهای زشتی با کارهای می و اشتغال و الا پلای احرام و کشور غایبات به واسطت از سرم این قاربات این شما که باید یه مکان است نه تیه زمان خیلی محبوده شواهد نشون میده که جن به لحاظ قدرت از انسان ذریع کرده فقط همین نقطه داره کنم قدرت نیست خدا همون جور کرده که مکان رو میتونه رد بکنه و املا من حیث مجموع ذریع نیروی بسیار ویسته بلا ذلیل هارو حرمتی ایزا یعنی سوال شما سن نشون من میشون اصلا داره که هم اگر تشخیص موادی به ایزا, ایزا جن بشه باز هم اشکال نداره بلا ذلیل هارو حرمتی ایزا ایشان بایده ایشان بایده از از این یکی فرقو چه نیست هر ثابت اگه ما بگيم خيل دعاي نمازتون واقعا ميشه خيل تو آياتي دو سه جن هر شواهد در این جهات که جن هم مثل انسان تکلیف داره غیر از شیطانه تکلیفش اون با شیطان است و غیر از حیوانه غیر از که شما مثلا گوسفند سر میبونه یا ماره میکشه. غیر از اونها. غیر از اینکه شما مثلا بگین خب من میفهم شیر رو تکلیف بکنم یا گورگ تکلیف. میگن میگن شیر رو تکلیف. مثلا چون شیر و گور زواجرشون نمیگی که تکلیف داشته باشه. دارم برای مرسا یاد کردن که ایزا ایزا ایزار حیوان خب یه جلگه میگنیم این مثل ای می ای اون میمونه وکن از با شواهد قرآنی و حالیسی نیست نه از شواهد قرآنی در که اونها مثل انسانه خیلی جام با انسان یا من از جنوال انسان هستان اصلا با انسان داشت امایتی هم نکن منی رسول اصلا مثل انسان حساب شده لذا اینی که لازلیل علام خرمت ایزاره همین روشن نیست به حیوان ثبات جیاز کرد مضاقب اینکه ایزار خود حیوان روشن نیست روشن نیست انسان بوتونه حیوان رو چون پیدا همارا ایا خون بل مصلول و بلکل بل عبور لذاب بحث مراعات حال حیوان رو خصوصات رو خوبها هایی ما جداروان نه در زید بحث کتاب نکاح کتاب بذارن به نام نفقات در اونجا نفقات حیوان و متعرضه حال حیوان شدن در زرگ کتاب نفقات در باب نکاح نظام در اونجا داره که هیوان راضیات نکنه یا قدار شده یا اگر نمیتونه برشتون توی گرام خودشون ببین میده این ازیاد کش نکنه به قدار هیوان با یا باید نگرداری بکنه یا مثلا گوستان دکار باشه اما بگیره بدنش چاو چاو بزنه اون هم روشن نیست این حرمت ایدار هی کفارشون تبقیه همون شرایطی که هست با نصاب کرد اون فرسون تو توی ایوان کافر هستن میشه ایزارشون کردن مجردی که کافر باشه اون هم کافی نیست اما که به این محلقی رو که مرمون استاد فرمونه که اشکال نداره این انصاب قضیه از اشکال نیست انصاب قضیه با در نظر گرفتن مجموعه شباهه حتی در حیوان خالیت اشکال نیست چه بشر بله خدا تکلیف. اصلا میگه آن را درس کلی نه من په، په، من یه بیگاری میتیشی. که برام بیگاری لیلیتی عقیلیت نه. صدهاش می همین که کار را انجام بدن بازاشم چون پیغمبره چون مخاطر پا... از سر پادشاه پادشاه بوده چون پیغمبره انصافا چون آخه افراد نو صالح بودن که از دیسای مخصوصاً به بند بکیش بودند در عذاب. آقا از لحیم نداشته میگی که عزمه نو و شروع رو مستخدم بگیره؟ نه ایشون مطلقم میگه. فلا یه رو مستخدم میکنن و کشکل غایباد واسطه. این بالادین نه همه متعلقانه. یه دستیم تاکر متعلقانه. انسامان روشنیس، انسوایی متعلقیش روشن. آجی کشکان داده حتی اگه مثلا یه دعایی چیزی بخونه که جنی ترسید بشه من باز اعتراض کردم مثلا معترضن که ما مثلا جنی داریم که این مثلا تحصیل جدی بوده بعدا قرار مونده بعدم برای ما میان هیچ می واسه این توضیح. من, من خیلی این قضاها رو اجمالاً از اینم نمیخوام ولی شدن که چون یه دیگه داره الان که به ما کار اشکار نداره نه, نه بخواد به قدرت او فکر می‌کنه خواهد به خلاف قدرت او و جبرا و قهرا ایزا اون بکنه و الله پس عجیب بشه حالاتی باشه بشه روایت داره که عین معزه منجریون پیش ما خدمت میکنن این چیزی نداره شفا اون قسمتش نه ایزا الهی لا ذیل علی حرمت ایزاره اینه شوشن نیست نوعی چهارومی رو مرحوم مجلسی به عنوان سحر گرفتن معلمی مرحوم مجلسی به همون فخر انواع تخیلات در اخذ به العیون در اصطلاح نظام یک خطای باصره خطای چشم چون این دیواره تو آب اپتیک و اپش تفکید شده که دقیقا این خطای باصره معروف دیگه انواع خطای باصره وجود داره یه یعنی شول عادی که پیشا اون شالگین داره اضافه ری یعنی مخاط این, این ادعیه انواع سهره اینه که این مطلب واقعیت نداره با یک به چشم اینطور دو سه جور ایشون نقل کرده ای آن مراجعه کردن نیست بله و تقریبا یه مقداری از شعبده همین از شعبه انواع مختلف داره یه مقدار بازیه با حوزه تخیل انسان بله بعد آخوخو میفرن حاضر نوقل معروفه شعبده فلا یک بشه به سه بله شعرزه میاد ان شاء الله. باکن هم از کردن در اورگ به سر وصیتی انه لا لیلا حرمت حرمته راست دلی بر این چشمندی حرامه مگر آثار باطل باید درش بار بکنه بعد ایشون می فرماید که چون ایشون قبول کردن که ایدیوز سر نیست نه هم مطلق علیه از سر خبر الاحتجاب ارض کردیم من تو دیراتش سر این که سر چند میشه که جوریه این هم در کتب ما هم در کتب احسان در مسادر ما در حدیثی در کتاب احتجاج به ما و ساده داده شده که به ذهن ما این قدیمترین تقسیم بندی که تقسیم بندی نه موارد اطلاف است. یکیش همینه و نوع آخر من ها خطفتون و سرعت و قاپیدن قاپیدن و سرعت و مخاری مخاری جمعه احرام کارهای مثل مثل قلم آبی و خفه و ثبوتی. بعد ایشون میفرماین درسته الا سبیل المجازیه این روشن دیست مجازیه ایشون که پند مرده من درست بقیه شمایش این روشن این مطلبی که صدقشان به این جرگنه قرف تساموهی به سهل میگونه ولی شما این درهیه درگن به واقعی مثل کتاب سالو ما خفیه سبب و سبب داره اما نمیشن سیده نهی که این سبب باشه نوع پنجام انام ارخامه از این ترده را متفکیب الاراق از این ای نوع پنجام بیشتر این نوع پنجام بعد از انتشار و علوم در دنیای اسلام آمد که بر اساس اعمال ریاضی و حساب های معیمی غروبودشون کارهای حجیبی میکردن مرادشون از کارهای حجیب این بود که مثلا منبار یک چاهی که منبار مثال بخوا بگم پنجاه صد متر بود یک کاری میکردن که مثلا پنجاه یا بیستفین نزده کشن آب اون در بیاد بادا مثلا سر پنجاه مثی یک میخیزدن یه دونه تنها پنجاه مثی میخیزدن سر بیستفین نزده یکی سر اون درشو هم یکی و قرقره میکردن. این بالایی که اون 25 درجه بر بعد که می‌رسید 25 آخر دقیقاً 50 درجه. دقیقاً 50 درجه می‌گیرید اما سخته. این جدی از که میان الی مجرب، که الان این در حقیقت اینطوریه یعنی اون نقطه خمیش خب این تجربه آور بود، اینا کارای بود یا مثلا چراغ می‌ذاشتن روی چراغ مثلا ببینیم برداشتن چراغ یک روز ثابت فلفروشی می داشتن این باخاری که یعنی اون گازی که از احتراع نقد بلند میشد این فر رو میشهکن. و فلفر تو سح میذان و یک عاصلی نشید طریفست های سرره نه میه و باز میدارن که عاصل دنبال باز این هم میگه نوع سر چیزایی اینو اینا مسال به علمی که باان نبوده که شر باشه ال عجیب و ترکیب الالات از نسبه الهندیسی که راست نیرد باست کفارسین الا آخری دیگه خدایم باید راسته این مطلب درسته یعنی به عبارت دیگر را دارم این علمی در یه جامعه ای که عقب افتاده بود درسته حساب میکردن این میگرد چی نه؟ اون مطلب یه مطلب علمی درسته رفت نداره موشه نداره میکنی جامعه عقب افتاده خیال میک من شد مثلا درроде که جواب زمان ناصریش شاه یا قنصریش شاه اختراعیده یا بحثی کرده گویا مثلا تازه بحث بوده در آمریکا یا از اروپا که مثلا هواپیما میره به هوا اونجا منظور نه مستحیل داره اونم با آهن هست که بره به هوا اینم کنه یک بحثی باشه به استحاله‌ای که یک آهنی داره به هوا و در هوا پرواز بکنه خب این در اول اشتغال آقای ها صاحره مثلا کاری کردین یه چیزی میگه اون که موبرد ماه نخشر اسمش کیه همیشه باقر استادش سادشون دار یه سرخه رو سر رو چهار میده تو نداری کردیم جیوه میشه میره بالا من ماه از تو چهار رو بردن ادار نمو بزن کرد داره ماه نخشت بشید فلان مو برد علاقی که ما ها اینها برا نه نه نه این مبرع بردش رو سادش باقر داخته از تو خود هزت چون سادش؟ خب بعضی از مرزا در طول تاریخ میذارن که به صورتشون بورقه میذاشتن مثل خوشی زنها ایدهشون تو که این زیباب زنی حسن جلشون فردا ما بورق نمیخواست خودش هم بورق اونجا این آقا مثلا مثل که ابدروب بود اون خیلی بر بود بورق که شناخته نشه و ادعای پیغمبری کرد دار ماه نخشب نه به ماه نخشن. با جیبه و ماهیان این بارمان عنوان نقوفت داشتید به شم برغم از بیرن این هم یه ای جزی شبیه می خب این هم سه آه یه خوبی که هم بودن که یه میگو کنم خبتون آن چون از کلم اصل مطلب مال فخرازی درست هم هست این ایجاد صناعی علم عجیبه و ترکیب امور غریبه که ما حوال معروف کسیدن فر اصل حاضر کرد طائرات و قطارات و سیارا خب اینا در صابه جزا واقعا جزا بکنه بدر نیست نما به در عناوین اولی خب دلایل شده که اصلا اینا اهل به نه اینکه محرم نیستند تجربهات بشه تشریح بشه الا از طبقات علیه عناوین محرمه اخرى و نیست من محولت سر اگر اینا سر نیستن در واقع یا یعنی امور واقعی هستن بلکه برای جامعه ادب و ستاد بمان سر چون سر از عرف گرفته شده نوع ششمی که ایشون نعل کرده استعانه به حواس تعلیقیه بعد از ادویه رو استعمال میکردم و مخصوصا یوازی گفتن که من سر کردم تو حالا تو برای اون ممکن بود حتی از کردم یک کاری جو که اصلا گشید گشید در یه مقدار زیادی حالا من داشم میگم از آبی گشید و انسان به خورد کشنده است گشید تو ذهنیت مردم هست که در این اعشاب و گیاهان اصلا جاها اگر نافع نباشن مضر نیستن اینطور نیست همین گیاهان لطیف شیرینی موضب هم هستن نه نافع نیستن بعضیشون میکشند، خود گشنی جوز ادویه نیست جز قضاست خوراکی جمعه دارویی هم داره میشه جنبه خوراکی داره اما همین آب گشنی رو به کمیه معین انسان بخور انسان میکشه تمام میکشه خب است از این ادویه عجیبه درون شیمسی که در خضار و در که مبدد یعنی عقل کم می‌کنه آدم بلید می‌کنه یا موزیره عقل یا گیج می‌کنه یا مست می‌کنه من از عسردم بعضی چیزها، هست از کلی نگاه‌ها یه یا عادی اسمش رو می‌خوام ببرم مثلا مثلا چیزا هست شبیه شراب هم خاصیت شرابی رو داره اینا چی به من گفتم اینا اثر می‌کنه بعضی اینجا مثلا فلان گیر اسمش رو اینجا آورد آبشی گرفت بکنند که کس تو چرا؟ این سه نیم <تصفيق> از بیره از اصلا این خاصیت هم نیزی این جوز به تبایی اشیائه بله آیت میفهمیم هایت میفهمیم هایت از خارج ها خارجان سهر موضوعی یک خب نمیشه تو کرد. اما رو نمیشه گفتم در کتاب تاریکی نوشتم که یک مقدار از یهود مدینه بردی کار رو انجام میدونن برا مردم مثل انا گذاشتن این هست تو جامعه بشری <متحد> یه در مجمع از کردم یکی از اطلاعی خیلی محروف یونانه که در حقش مبالنه هم میشه که میگرد مردار زنده میدار اسکلپیوی هستم نیزار اسکلپیوی هستم چیز این اینقدر طبیعه محروفیه من دیدم اکتش چاپ شده اصلا در یونان یک محبه یا اصول یک مجسمه دحمتی اینه گذاشتن این دکتره مریض ها میگن اونجا به این مجسمش خبرات پیدا میکنه آ خوب میشونده به شید آحتا درو که دیگه برات در مخب بگم یک نوع رابطه متاسفانه بین سه حتی بین سه رو این مخرله شفای اینطوری هم مطرح بوده. و خیلی ت به فوق الداد اصل هم چندبار یه همون یه صی داشتیهیه ماری گرفت بود دورین اعاب پیش بود دور ساج تثیر در ما رو. که تا زمانی که من هستم دارو خانه هم میبینیه این اصای همونه اصای همون طبیب معروف یونانیه اینقدر که سال نفس رو بوده که هنوز هم اون رمدی که دستش بود هنوز تو طب به کار برده میشه در از این هست راسته اینه که اینم سر نیست اینم راسته اما عرض کرده مشکل اینه الان برای شما مثال در یونان این طبیب رو به عنوان یک علاقه فر من بیدم به دذار اسمش از تا ای هست تا زیر شاکن شده عکس اون معبد و چیشده اکس مجسمیه ده از این گذاشتم انواع مریضم اونزید بشه سنده برای علاج اونجا که به روحیشان تمثل کنیم نوع پنجون هفتون منصف تعلیق القلب و هوا علیده ساهر و لیمیا. ولی اسم الاهزم و یه دهی انال جنیو توی اونهو بل اضاکان سامه زعیف العقل قلیل تمیز اعتقده به که تعلق قلبهو به یعنی افراد رو شیفته خودش رو کنه حالا این گیشون به مثال ها زده علم کیمیا ولیمیا اگر شد دوتا شنه روشتن استطوری هم داره ای و ایمیا و ایمیا که کتابی هم داره کلوسر من اون شخ باهی میبین کتاب میزن ما فکرمون چاپ شده باشه کتاب کلوسر هم پنج حرفی که بود کلمه هست و همون علمه کیمیا و کیمیا و لیمیا و سیمیا و لیمیا این تنجیه تصالفاً آنگه ماهر باشه چون من دیانیش این رو داشت داره این طورم آنشون نباشه مرحوم آیه علامه سبوتوی قالمان از این حرفان این پنجتا علم هم شهر داده آقایی که خواستن اونجا ملازه از این برمین تا علم هم هلا این شهر اینشان درسته نمونم بس بیگه و فیه انهولا وجهل جهلی من اقسام سه و انهولا وجهل جهلی من اقسام سه و اصلا آثاری درست میکنن همه انه قلب لوکان سهرن لکان اصلا استمالتو به مطلقه ها سهرن. حالا یک کسی به انسان میگه من نفوزو مجبول است و من احسن برنن اله ها یک کسی پول بده بهش علاقه بوده این هم حرامیشن سهل نگه این نیست مرادی مراد از سهل کارهایی که متعارفی شما خب میونیم دلگه پول داد کهش علاقه برده کرد مثلا مقام داد منصف داد کهش این ها سهل اموری که به حسن ظاهر معلوم نیست هشتم هشتون نمیمه است تبعه رو دوره نقش برا سر امنیه تو روز ما هم ایشون فرمودن که وقتی ناب انکارا محرمه ایجاد فتنه بین افراد به زوره به عنوانه بله ان بله ان در اوهالا از اجنبیتون و سر در مورد اخبار مثلا متراضیه میگه از صاحب کافر قطع نمیمن نمان کافر نیست الی اخره اینم نوع هشام البته شرایط الهی کرده به به اصرار خودشون شعر همینو سر می‌ذاره سر حلال اصطلاح سهر حلال برای این جهت چون سر حرامه ای به سهر سر حلال اعتبره اهلی شیرازی کتابش شده اسمش سهر حلاله مجموعه جو هند دیگه هر بیت شعری یک نصف فنی بدی است علاوه اونم سر حلال هم از اضافه میشه چیزهای دیگری هم میشه اضافه کرد همین توضیحاتی که ما داریم و که انصافش این که دقیقاً بخواییم انصاف بکنیم، بیشترش ناشی از جهده و تعبیر از این ها به خالی از اشکال نیست تا اینجا این هشت قسم رو الان متعرض شدیم یا با این سهر الان ناخص انصافاً انصاف انصافش ما بخوایم بگیریم که سه خصوص این یکی از اون زارد اون یکی دیگه نیست خیلی مشکله این ظاهرش همون رایست ما عرض کردیم ظاهرش حرمت عدم حرمت کفر فسخ را آثاری که برش متردست بشه تابع اون کاریست که انجام میشه یعنی ما تقریبا میتونیم الان اینطور طور ادعا بکنیم اگر جایی هم نمیتونیم تشکیز بدیم با عنوان اجمالی مثلا میم تأثیر نفسه یا نفسمونه با عنوان اجمالی میتونیم الاد اشعار رو پیدا بکنیم و صرف دادر این طروده همون ماخفی بهتره مادر و خفی معقده معقدی داشته، واقعیتی داشته لکن این مخفی شده و سپاهش هم به سر جهده ما الان عده البته ممکن است این تحلیل نهایی بکنیم مثلا اینجا تنویه مغناطیسی نه وقتی می نازل در گردنوارش اینجا مثلا این چیزی که الان اصطلاح تلپاتی تلپاتی یا خبر ذاتی داخلی عرب‌ها ترجمش علگیها ذاتی اینو خبر دادن به داخل در واقع در عمر که در نماز رو گفت که الساری الجبر الجبر که گفت من در صحنه لشره و مثلا به کور نماز این اومد اینا در انرژی الان در شوالد فراوانی که تو بیداری جرد کرده از زیاده ظاهران تمام اینها دارای واقعیتی هستن اما واقعیت هاش برای ما والبن پوچیده هست ظاهران صحب یک عنوان عام میست یا اگر بخواد اینها آثار و منافع بعدی رو به کار ببره تفتیب آثار بده. اما اگر ترتیب آثار نده کشف خود اثاره ظاهران مانعی فی نفسه من باشه لازم که بعضی جزوه علم است و جمعه به اصطلاح حفظش علمی هم داره رسال الله حفظه اگر بشه بیدن این جهد تطهیم نیکرام اصطا در, در نظر نهایی راجب روایت چون روایت رو فقط خوندیم نظر نهاییش این شده بله